گاهی باید سخت گرفت و ایستاد و ایستاد شهید شد، گاهی باید نشست و حتی دراز کشید و زندگی کرد، هر مسئله‌ای ویژگی خودش را دارد، اگر پای آرمان یا وطن در میان باشد، البته فرقی نمی که ایستاده بمیریم یا ارمان کنند یا با تبر بگن به هر حال مرگ صد هزار بار بهتر از کوتاه آمدن است اما وقتی پای کمی وام گرفتن از آقای پویا باشد، چما دارد که بگیریم در کنار هم راه می رویم می خواهی تمامی قلبت گلشاران شود و نفس کشیدنت آسان و روحت قناری گلزاران سبلان؟ دیگر چه کاری را تدارک دیده ای؟ چیزکی بخریم و به دیدن بچه های مهدی برویم فقط نیم ساعت این خوب است چاره هم نیست شادی های روز اول هفته را که نمی توانیم تماما برای خودمان نگهداریم. نگه داریم می شود؟ در کنار هم راه می رویم پسرک خسته اما خوشحال است می دانم که ته قلبش چشمی زلالی از خرد و شادی ها می جوشد هیچ چیز همچون شادی شانه به شانه مادر و پدر بچه ها را راضی نمی کند. خانه آسودگی و خستگی های مطبوع آرام کاملا آرام بانو شام و بدان که دیگر به چیزی همچون حاضری ظهر قناعت نمی کنیم. کاش اول سوال می کردی بعد شکایت. کاش پیش داوری و سوء زن هر دو از یک خانواده اند هر دو از فرزندان اهریمن. شام مرغ پخته داریم با مخلفات عالی و رؤیایی تا شکل گرفتن سفره برگنداختن خانه با من پسرک میگوید من چه کار باید بکنم وردستی مادر و مادر بزرگ ضمن کار گپی کوتاه در باب همه چیز مسائل خانگی، کاری، خبری، ملی، میهنی و جهانی انسان برای حضور و مشارکت ساخته شده است هرگز از منزل سیاست آنچنان دور نشویم که بازگشت به با آن ناممکن شود کمی از برنامه فردایت به گوگل مرد فردام سه شاگرد دارم که به خانه هایشان میروم درست است؟ بله سری به زیر پله می زنم، دو ساعتی را هم در آموزشگاه می گذرانم، الباقی همه در خدمت تو، و باز شب تا دم صبح کار میکنی. اما گرفتار کمخوابی خوابی نمی بی زحمت یک نوار بگذار، در این لحظه چه هنگی را دوست داری، چیزی از محمد نوری، شجریان، شهرام نازری یا تعریف، شام همراه با حرفهای ساد دلانه مادر بزرگ پسرک که ترا بی جهت به می اندازد آنگاه مادر قصه گفتن را آغاز می کند آنطور که انگار برای خودش می گوید پسرک مدت هاست که به خواب رفته اما مادر هنوز می گوید و ما گوش میکنیم. من به کودکی های خیش باز می گردم دور شدن از خیشتن خیش, تن خیش. این مصیبت است و مصیبت بزرگترین است که قبول نکنیم که با شتاب سرگرم و گرفتار دور شدن از خیش تنیم این دیگر مصیبت است هنوز هم اما میتوان روبروی آینه در خلوت خانه نشست به خود نگاه کرد و از خود پرسید آیا همانقدر خوبی که سالها پیش از این بودی آیا تهارت کودکی، صفای نوجوانی، شور جوانی و آن ایمان عظیم را که در دل داشتی، با خود نگه داشته ای؟ به پدر بنویس و خواهش کن چند روزی به تهران بیاید و مهمان ما باشد. فکر می کنی بتواند، امیدوارم بخواهد که بتواند. اصل؟ بله، از بودن با من راضی هستی؟ اینطور فکر می کنم. کاستی و نقصانی در زندگی من هسته می کنی. هنوز که نکردم با پرحرفی هایم و خودباوری هایم و برنامه ریزی هایم خسته و کلافت نمیکنم. هر وقت کلافه شوم سریح می گویم اصل؟ بله زندگی در دنیای کنونی و اوضاع فعلی آیا می‌تواند صورت و معنایی خوبتر از این که داریم داشته باشد؟ فکر می کنم و اگر می خبرت می کنم. در این لحظه چیزی به عقلم نمی‌رسد، الا این که الباقی سآلهایت را بگذاری برای شبهای بعد تو خفته ای از پنجره می بینم که ماه بسیار آرام قدم می زند. آسمان در خواب است و ستارگان بی صدا به ماه نگاه می کند.